ساغی بیار باده که ماه سیام رفت درده قده که موسم ناموس و نام رفت وقت عزیز رفت بیا تا قضا کنیم عمری که بی حضور سراحی و جام رفت مستم کنان چنان که ندانم زبی خودی در عرصه خیال که آمد کدام رفت بر بوی آن که جرعه جامت به ما رسد در مستبه دعای تو هر صبح و شام رفت دل را که مرده بود حیاتی به جان رسید تا بوی از نسیم میش در مشام رفت زاهد قرور داشت سلامت نبرد را رند از ره نیاز به دار و سلام رفت نقد دلی که بود مرا صرف باده شد قلب سیاه بود از آن در حرام رفت در تاب توبه چند توان سوخت ام چو میده که عمر در سر سودای خام ر دیگر مکن نصیحت حافظ که راه نیافت گمگشته ای که باده نابش به کام ر